نقدها را بودایا که ایاری گیرند تا همه سومه اداران په کاری گیرند. مسلحت دید منان است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. خوش گرفتند حریفان سر زلف سابی گرفلکشان بگذارد که قراری گیرند. قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش که در این خیل حساری به سواری گیرند. یارب این بچه ی ترکان چه دلیرند به خون که به تیر مجه هر لحظه شکاری گیرند. رقص بر شعرتر و ناله ی نی خوش باشد خاص رقصی که در آن دست نگاری گیرند. حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست زین میان گر بتوان به که کنار گیرند